گل بی روخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش نباشد طرف چمن و تباف بستان بی لال ازار خوش نباشد رقصیدن سر و حالت گل بی سوت هزار خوش نباشد با یار شکرلب گلندام بی بوس و کنار خوش نباشد هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد. جان نقد محقر است. حافظ از بحر نصار خوش نباشد.